حکایت یکی را از علما پرسیدند که یکی با ماه است در خلوت نشسته و در بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب چنان که عرب گوید ات اون و ناتور و غیر و مانه. هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری، از وی به سلامت بماند، گفت اگر از محرویان به سلامت بماند، از بدگویان نماند. و این سلم الانسان و منسوع نفسهی و منسوع زن المدعی لیس یسلم شاید پس کار خیشتن بنشستن لیکن نتوان زبان مردم بستند